این داستان پری دریایی کوچک در دور های اقیانوس آب مثل گل ذرت آبیه اقیانوس از بلندترین ها هم عمیق تره اونجا مردمان دریایی زندگی میکنن و در عمیق ترین نقطش قصر پادشاه دریاها قرار داره قصری ساخته شده از مرجان و مروارید همسر محبوب پادشاه دریاها مرده بود. بنابراین مادر پادشاه یعنی ملکی پیر مواظبت از شش بچه پری دریایی زیبای پادشاه را به عهده گرفته بود. شاهزاده های کوچولو از صبح تا شب آواز می‌خواندند و بین ها و تالارهای قصر اینور و اونور می‌رفتند. بعضی وقتا گله های, ماهی های خجالتی و رنگارنگ می اومدن و از دست اونها غذا خوردن. گاهی هم، هر کدوم از اونها به طرف باغهای کوچیکشون میرفتند که توی زمین های سلطنتی ساخته شده بود. هر شاهستاده خانم باغ مخصوصش را به شکل و طرح خاصی درورده بود. یکی از اونها، شکل یه نهنگ بود. توی یکی دیگه از اونها باغچه‌ای از صدف ساخته شده بود و توی یکی دیگه گلزارهای درست کرده بودند که از پای دریایی برای چرا به اونجا می آمدند. اما باغ کوچیکترین شاهزاده خانم شکل خورشیدی بود که در جهان بالای آب‌های اقیانوس می‌درخشید. گلهایی که توی اون روییده بود مثل نور خورشید به رنگهای قرمز و زرد و نارنجی بود. پریه درهی کچولو هیچوقت به سطح اقیانوس نرفته بود. اصلا جهان بالا رو ندیده بود. شهزاد خانوما فقط وقتی که پونزده سالشون می شد این کار را انجام بدن. اما از نظر پری دریایی کوچولوی قصهٔ ما اون روز خیلی دور بود اون عاشق شنیدن داستانهایی بود که مادر بزرگش دربارهٔ آدمها کشتیها شهرها حیوانها مراته جنگل و اینجور چیزا براشون تعریف میکرد خیلی از شبا پری دریایی کوچولو پشت پنجره باز اتاقش میستاد و به انعکاس نور لرزان ماه و ستاره ها و هیکل سیاه کشتی های نگاه میکرد که مثل ابر از بالای سرشون عبور میکردن. هر بار که یکی از خواهراش پونزده ساله میشد، پری دریایی کوچولو به اونها التماس میکرد که هر چیزی رو که اون بالا دیده براش تعریف کند. بالاخره پری پونزده ساله شد و وقتش رسید با چشمای خودش دنیای بالای آبها رو ببینه. وقتی پری در یک به سطح آب اومد، دید اونجا از چیزی که فکرش رو میکرد زیباتره. درست وقتی که خورشید غروب کرده بود و ابرهای آسمون قرمز و تلایی شده بودند. جوری که انگار، به آتیش کشیده شده باشند. سر پریه دریایی کچولو کفهای روی آب رو شکافت و از آب بیرون اومد. صدای موسیقی و آواز یه نفر از یک کشتی به گوش می رسید. کشتی دکلی بلند داشت و همه جاش رو با پرچم و پارچه های رنگی تزئین کرده بودن. ناگهان، فشفشه‌هایی از درون کشتی به هوا پرتاب شد. فشفشه‌ها توی هوا منفجر شدن و به شکل هزاران ستاره در آمدند. پری دریایی کوچولو برای اولین بار آتش بازی رو داشت میدید. وقتی روی موجی بلند سوار شد و بالاتر رفت، تونست روی عرشه اون کشتی باشکوه رو ببینه و دلیل اون جشن اشرافی رو بفهمه مراسم جشن تولد شاهزاده ای رو روی عرشه اون کشتی گرفته بودن شاهزاده ای که تر از تمام پری های مردی بود که اون به عمرش دیده بود پری دریایی کوچولوی قصه ما با اشتیاق محو تماشای شاهزاده و کشتیش بود که ناگهان صدای زنگ لرزان و آشنایی رو شنید که میون امواج آب تنین انداخت. طوفانی در راه بود در عرض چند لحظه آسمون سیاه شد. دونه های درشت بارون مثل شلاق به کشتی فرود می اومد. امواج به شکل کوههایی بلند در اومدن کشتی رو مثل کاه بالا و پایین می بردن. بعد با ضربه، هوناک اون رو در هم شکستن. کشتی به ماغ دریا رفت. پری دریایی کوچولو میون امواج پرطلاوم دریا شیرجه زد و در حالی که سعی میکرد خودش را از ضربه تیکه پارههای کشتی دور نگه داره به اطرافش نگاه کرد. میون آب های یا اقیانوس، پری دریایی کوچولو، از دیدن جسد آدمهایی که دور و برش شناور بودن به وحشت افتاد. یکی از اونها شاهزاده خوشقیافه بود که داشت خفه می شد و برای رسوندن خودش به سطح آب دست و پا می زد. پیدریه کوچولو مثل یه تیر میون آب به حرکت در اومد. شاهزاده رو گرفت و اون رو به سطح آب آورد. همان جوری که سرش رو بیرون از آب نگه داشته بود، شناکنان اون رو به طرف ساحل برد. پی دریایی کوچولو خسته و از نفس افتاده شد. نیمه جون رو نزدیک ساحل رسند و اونجا رهاش کرد تا امواج اون رو, رو روی ماسه های ساحل بندسد. بعد میونه کفهای دریا پنهان شد و اونقدر شاهزاده را تماشا کرد تا طوفان آروم گرفت. خورشید صبحگاهی گرمای دل خودش رو از لابلای ابرها به زمین فرستاد. برای اولین بار چشمش به تپه های سرسبز سرسب داد. صدای ناغوس ها رو شنید و دید گروهی دختر جوون از ساختمونی سفید که صلیبی بالای اون دیده میشد بیرون اومدند یکی از دخترها متوجه شد شاهزاده کنار ساحل افتاده دوی دو خودش رو به اون رسوند سر شاهزاده رو روی دامن خودش گذاشت شاهزاده آروم آروم چشماش رو باز کرد وقتی چشمش به دختر افتاد لبخند زد پری دریایی کوچولو با قم و اندوه روش و برگردوند، چون متوجه شد شاهزاده فکر کرده که اون دختر نجاتش داده. دوباره شنا کرد و به عمق دریا رفت و با قلبی شکسته به قصر پدرش برگشت. از اون روز به بعد پریه در کوچولو همیشه غمگین بود، اون در آرزوی دیدن دوباره شاهزاده خوش‌قیافه میسوخت دلش میخواست به اون بگه که چقدر دوستش داره و میخواد تا آخر عمر کنارش باشه دیگه هیچ چیز نمی‌خواست فقط آرزو داشت آدمیزاد باشه برای برآورده کردن این آرزوش هم فقط یک کار از دستش برمیومد. باید توی سفری خطرناک به اعماق سرد و تاریک اقیانوس میرفت و جادوگر دریا رو میدید. پناهگاه جادوگر دریا از اسکلت آدم ها و تکه های کشتی درست شده بود که زمانی توی دریا غرق شده بودن. پریه دریا یک کوچولو که از ترس میلرزید برای جادوگر دریا توضیح داد که برای چی به اونجا اومده. جادوگر دریا گفت به دست آوردن چیزی که تو آرزو داری خیلی سختتر از اینه که فکر میکنی. من میتونم کاری کنم که دومت ناپدید بشه و به جای اون پادر بیاری و بتونی کنار آدم ها که توی اون بالا هستن زندگی کنی و راه بری. اما هر قدمی که برمیداری برات براد قدر دردناکه که انگار داری روی تیغه چند تا چاقو راه میری. من نمیتونم تونم کاری کنم که اون شاهزاده هم دل باخته تو بشه. این کار با خودته. خودت باید دل اونو به دست بیاری. اگه شاهزاده با دختر دیگه ی عروسی کنه، فردای اون روز قلبت میشکنه و، به کف روی آب تبدیل می پری پریه دریایه کوچولو از شنیدن این حرفو به لرزه افتاد. اما به جادوگر گفت که به حرفاش ادامه بده. چنین جادوی قدرتمندی به بسیار سنگینی داره. وقتی من به تو پا دادم دیگه نمیتونی نظرت رو عوض کنی. دیگه هیچ وقت نمیتونی پریه دریایی بشی و برای دیدن خانوادت به دریا بیای. یک چیز دیگه هم هست. من نمیتونم مرجونی رو که نیاز داری درست کنم مگر اینکه تو صدا تو بدی به من. پریه دریایی کوچولو اونقدر دلباخته شاهزاده و مشتاق تبدیل شدن به آدمیزاد شده بود که آهسته نرجوا کرد باشه قبوله این کلمه ها آخرین کلماتی بودند که از دهان اون بیرون می اومد بعد از اون جادوگر دریا صدای پری دریایی کوچولو رو گرفت و معجونی براش درست کرد که بوی گندش داشت حال پری رو به هم میزد زد پری دریایی کوچولو وقتی برای آخرین بار از کنار قصر پدرش و خانوادهش که توی خواب بودن رد می تا برای همیشه به جهان بالا بره قلبش داشت از قصه میترکید به خاطر عشقا و به خاطر نبودن هوا احساس خفگی می کرد. وقتی پریه دریایی کتولو خودش رو روی ساحل کشید، برای آخرین بار نگاهی به دوم نقره و زیباش انداخت بعد ظرف مجونی رو که جادوگر دریا به اون داده بود به طرف لبهاش برد و یک جوره از اون رو سر کشید. همون موقع دردی شدید توی بدنش پیچید. روی زمین افتاد و از حال رفت. وقتی پری دریایی کوچولو به هوش اومد، چشماش رو باز کرد. دید شاهزاده قیافه کنارش ایستاده و با قیافه نگران اون رو نگاه می‌کنه. شاهزاده پرسید: "حالت خوبه؟" ولی پریه دریایی کوچولو نمیتونست جوابی بده. به جای اون لبخندی زد و به طرف پایین بدنش نگاه کرد. دید زیباترین پاهایی که آرزو داشت جای دومش رو گرفته تلو تلو خورد برای اولین بار روی پاهاش ایستاد حقیقت داشت پریه دریای کوچولو داشت روی پاهاش راه میرفت اما با هر قدمی که برمی داشت احساس می‌کرد تیغه صد تا چاقو توی پاش فرو میره علی با خوشحالی شروع کرد به دویدن و جست و خیز کردن کنار ساحل. شاهزاده هم مات و مبهود نگاش می کرد. شاهزاده دوست جدیدش رو برداشت، اون رو با خودش به قصر برد و شنلی ظریف از جنس ابریشم و ساتن به اون پوشوند. انگار شاهزاده اصلا به لال بودن دختر اهمیتی نمیداد. هر جا که میرفت، اون رو لحظه ای از خودش جدا میکرد. پشت سر همون رو کوچیک زیبایی که خودم پیداش کردم صدا میزد. با اینکه پریه در یه خیلی خوشحالتر و خوشبختتر از اونی بود که توی رویاهاش تصور میکرد ولی همیشه غم عمیقی توی چشماش دیده میشد. احساس میکرد چیزی روی قلبش، سنگینی میکنه هر شب با هسته از قصر بیرون میومد و به ساحل دریا میرفت. بعضی وقتا خواهرش رو میدید که در دور دستها میون آب پرسه میزنن و با صدای قمزده براش آواز میخونن حتی یک بار فکر کرد سایه تاج طلایی پدر و مادر بزرگش رو هم دیده ولی شاید فقط انعکاس محتاب روی موجای آب بوده سرانجام روزی فرا رسید که شاهزاده پری دریایی کوچولو رو سوار کشتی با شکوهی کرد کشتی درست شبیه همون کشتی غرق شدهی بود که پری دریایی شاهزاده رو از توی اون نجات داده بود اونا یک شبانه روز توی دریا پیش رفتن توی اون مدت پریه دریایی کوچولو توی حسرت این آرزو میسوخت که ای کاش بتونه توی آب بپره و برای دیدن خونبادش به همماغ دریا بره. کشتی وارد بندر سرزمین همسایه شد. مردمی که برای دیدن اونا دو طرف خیابون صف بسته بودن با تکون پرچم پرچمهای کوچولو ازشون استقبال کردن. شازاده آهسته زیر گوش پریه دریایی کوچولو گفت می‌بینی چه استقبالی از من کردن آخه قراره من امروز با شاهزاده خانم اونها ازدواج کنم ناگهان پریه دریایی کوچولو احساس کرد یه نفر انداخته و قلبش رو با انگشتای یخ زده فشار میده حتما اشتباه شنیده بود اما وقتی شاهزاده خانم از پله‌های قصر پایین اومد تا پیشواز شاهزاده بیاد پری دریایی کوچولو فهمید همه چیز حقیقت داره این همون دختری بود که شاهزاده رو کنار ساحل پیدا کرده بود همون دختری که شاهزاده فکر کرده بود اون بدن نیمه جونش رو از امواج دریا نجات داده همون دختری که شاهزاده اون رو با پری دریایی کوچولو اشتباه گرفته بود. بعد از ظهر همون روز پری دریایی کوچولو با لباسی بافته شده از ابریشم و تارهای طلا توی کلیسا ایستاده بود و دنباله لباس عروس رو گرفته بود. بعد توی راه بازگشت بی کشتی بی صدا اشک ریخت. اون شب کشتی با شکوه شاهزاده امواج رو میشکافت و به پیش می رفت. صدای موسیقی توی فضا پیچیده بود و فشبشه ها آسمون تاریک شب رو روشن می کردن. پریه در یک درست مثل همون شبی که مراسم جشن تولد شاهزاده رو از دور تماشا کرده بود احساس میکرد که اون جشن به اون هیچ ربطی نداره تمام شب روی ارشهٔ کشتی موند و به صدای آه کشیدنهای دریا گوش داد تا صبح نسیم گرم شبانه ی صورتش رو نوازش داد و موهاش رو توی مه نمناک دریا شناور کرد وقتی اولین پرتو خورشید از افق سر زد، پری دریایی کوچولو خودش رو برای حل شدن روی کف آب دریا آماده کرده بود. اما به جای اون، چشمش به موجوداتی از جنس نور افتاد که پروازکنان از آسمون به سمتش میومدند. وقتی اونها اون رو بلند کردن و با خودشون به طرف آسمون بردن، پریه دریایی کوچولو کچولو متوجه شد خودش هم یکی از اونها شده. اون موجودات زیبا گفتند: ما دختران هوا هستیم، روح ما جاودانی نیست، اما اگه به اندازه یک کافی خوبی و مهربونی کنیم، روزی یه روح جاودان خواهیم شد. این، چویزه رنجی که تو تحمل کردی. پری دریایی کوچولو اشک دست داشت رو به طرف خورشید دراز کرد. اشکی که از گونش میومد پایین اشک خوشحالی بود. پری دریایی کوچولو به کشتی زیر پاش نگاه کرد و دید شاهزاده و عروسش روی عرشه اون ایستادن. اونها با نگرانى توی دریا دنبالش میگشتن. فکر میکردن اون توی آب افتاده. اما پریه دریایی کوچولو زیاد نیستد. از دور برای اونها بوسه‌ای فرستاد و به همراه دختران هوا به طرف آسمون پرواز کرد. آیا تا به حال آرزو کردین که به؟ سر زمین های صح سفر کنیم جایی که پری ها و کوطول ها زندگی میکنن کانال هزار افسان همونیه که دنباله جایی, جایی که داستان های افسانه سر و سراسر دنیا به صورت صوتی و جذاب برای شما روایت میشه کانال تلگرامی هزار افسان سفری به دنیای خیال و رویا سفری